درد عشقی کشیدم که مپوز زهر هجری کشیدم که مپوز گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپوز آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپوز من به گوش خود از دهانش دوشت سخنانی شنیدم که مپوس سوی من لب چه میگزی که مگوی لب لعلی گزیدم که بی تو در کلبه گدای فیش رنجهایی های کشیدم که مپوس همچو حافظ غریب در راه عشق به مقامی رسیدم که مپوس